بنامه خدای یوانی خدای یوانی مهربان سلام. در بین افسانه های ملل، افسانه های ایرانی جایگاه ویژه و ارزشمندی دارن خیلی از ماها در دوران کودکیمون در هر جای ایران زمین که بودیم بارها و بارها این افسانه ها و قصه های زیبا و شنیدنی رو از زبان مادر، مادر بزرگ یا دیگران شنیدیم و با شیرینی اونها به خواب رفت در روی هزار افسان افسانه ایرانی خاجبو بو علی رو تقدیم شما می کنیم برگرفته از کتاب افسانه های کهن ایرانی به قلم فضل الله صبحی در روزگاران قدیم در سرزمین پهناور خراسان مردی به نام عبدالله بلخی زندگی میکرد که پسر تنبل و تمپروری داشت به نام بو علی بو علی اصلا تن به کار نمیداد و شب و روز توی کوچه و بازار در حال پرس زدن بود هرچه پدر و کس و بو علی اونو نصیحت میکردن که بیا و دست از این تنبلی و تمپروری بردار و یه کاری برای خود دست و پا کن گوشش بده کار این حرفها نبود که نبود بالاخره هم یه روز به نزد پدرش رفت و گفت پدرجان من دیگه توی این شهر نمیمونم من میخوام برم سری به شهرهای دیگه بزنم و چیزایی رو که در اونجا هست و در اینجا نیست یاد بگیرم پدرش پوسخندی زد و گفت پسرجان همین اندازه که اینجا یاد گرفتی کافیه. نگاهی به سخت هاپای بو علی انداخت و گفت پسر جان کمی صبر کن فعلا از فکر سفر به شهرهایی دیگه بیرون بیا. پسر که همون بو علی باشه با بیه بلند شد و از پدرش فاصله گرفت و رفت. ردوی اون روز بو علی به نزد پدرش رفت و گفت پدرجون دیشب خواب دیدم که سوار ابری شدم و رفتم و رفتم تا به کنار دریای شیر رسیدم بعد سرم رو گذاشتم به کنار دریا و تا تونستم از اون شیرا خوردم و بعد با هیجان ادامه داد پدرجون نمیدونی نمیدونی چقدر چاق و فربه شدم اونقدر فربه که همه جا رو گرفتم باورت میشه پدر که تا این لحظه دقت به حرفای پسرش گوش میداد دستی بر شونه اون و گفت پسر جون بذار من این خواب رو برات تعبیر کنم بو علی با خوشحالی گفت مگه میتونی پدر با خوشحالی جواب داد البته که میتونم پدر گفت سوار بر ابر شدن را پیمایی دریای شیر دانشه. و شیر خوردن دانشمند شدنه. بو علی پرسید، فر به تندی پرسید فربه شدن چیه پدر جون؟ پدر جواب داد فربه شدن بزرگ و سرشناس شدنه بو علی با خوشحالی گفت سرشناس شدن؟ یعنی من آدم بزرگ و سرشناسی میشم؟ پدر خندهی کرد و گفت <تصفيق> اگه تلاش کنی و دست از این تمبل بازی ها برداری چرا که نشی؟ بو علی با نومیدی پرسید ولی من چجوری میتونم آدم بزرگ و سرشناسی بشم در حالی که هیچ کاری رو بلد نیستم پدرش گفت نگران نباش همین فردا با هم دیگه میریم یه شهر دیگه اونجا من تو رو به دست یه استاد بزرگ میسپرم تا هرچی میدونه به تو هم یاد بده بولی که از شادی تو پوستش نمیگنجید گفت من میرم بار سفر رو ببندم و ره. فردای اون روز پدر و پسر صبح زود به راه افتادند، رفتند و رفتند تا به بیابون خشک و سوزانی رسیدند. پسر گفت، پدرشون من دیگه نای راه رفتن ندارم، تازه دارم از تشنگیم حلاک میشم، بهتر یه کمی استراحت کنیم. پدر گفت، میدونم پسرم، منم خستم، ولی بهتره یه کمی دیگه بریم جلو تو این بیابون خشک و سوزان که جایی برای استراحت کردن پیدا نمیشه بعد دست پسرش رو که از فرت خستگی روی زمین رها شده بود گرفت و اونو بلند کرد و باز هم با تمام خستگی به راهشون ادامه داد پدر و پسر همچنان به راهشون ادامه دادند تا اینکه از دور چشمشون به چشمه افتاد که دور اون چند درخت کهنسال رویده بود اونا با خوشحالی قدم برداشتن و به تندی خودشون رو به چشمه آب رسوندن آبی به سر و صورتشون زدن و انگار جون دوباره گرفتن پدر به درخت کهنسال تکیه داد و نفسی به آسودگی کشید و زیر لب گفت خیش حالم جا اومد ولی هنوز کلامش تموم نشده بود که مردی از توی یکی از درختهای کهنسال بیرون اومد و گفت با من کاری داشتید که اسمم و صدا زدین پدر و پسر که از دیدن غیرمنتظرهٔ مرد هراسون بودن کمی خیز برداشتن و بعد مرد گفت نترسید نترسید فقط بگید با من کاری داشتین پدر و پسر که کمی ترسشون ریخته بود آروم گرفتن. پدر به مرد گفت من شما را صدا نزدم فقط چون خسته بودم دست رویی شستم و به درخت تکه دادم و گفتم آخش همین مرد گفت خب حالا بگید شما کی هستی چیکار کار دارید و کجا میرید پدر بو علی در حالی که به پسرش اشاره میکرد گفت این پسر من تن به هیچ کاری نمیده ولی دلش میخواد از همه چیز سر در بیاره و همه چیز رو یاد بگیره. مرد نگاهی به بو علی انداخت و توی دلش گفت آه این پسر همونیه که به درد من میخوره. بعد رو کرد به پدر بو علی گفت من میتونم هر چی بلدم به پسرت یاد بدم. بهتره اونو بذاری پیش من تا از اون آدم بزرگ و سرشناسی بسازم پدر بوالی فکر کرد و بعد با خوشحالی پذیرفت که پسرش رو نزد مرد بذاره تا همه اون چیزایی که میدونه یادش بده چند لحظه بعد هم پسرش رو در آغوش گرفت و از اون خداحافظی کرد و به طرف شهر حرکت کرد از پسرش جدا شد مرد دست بو علی رو گرفت توی درخت از دریچه اون رو برد به یه باغ بزرگی که در اون خونه های زیادی بود مرد یکی از اتاقها رو به بو علی نشون داد و گفت اینجا متعلق به توه اینجا بمون و زندگی کن بعد تحکیل کنان اضافه کرد به خونه های دیگه یک کاری نداشته باش بو علی پرسید خب حالا من باید چیکار کنم؟ مرد گفت تو باید از من که استاد کیمیا و سیمیا و جادو هستم چیزهایی رو یاد بگیری اگه خوب یاد گرفتی و باهوش از آب در اومدی تو رو نزد خودم نیگر می‌دارم وگرنه وگر نه بیرونت می کنم بو علی خوشحال شد و در دل گفت آه این همون دریایی که تو خواب دیدم بعد قبول کرد که هرچه استادش میگه گوش کنه و همه چیز رو با دقت یاد بگیره دو سه روزی گذشت تا اینکه یه روز مرد به بیابون رفت و بو علی تنها توی اتاقش نشسته بود و داشت به رویای شیرین آیندهش فکر میکرد که یهو در اتاق باز شد و دختری زیبا و جوان وارد اتاق شد. بو علی با شگفتی بلند شد و روبروی دختر جوان ایستاد و ازش پرسید: تو،, تو تو کی هستی؟ چجوری اومدی اینجا؟ دختر جواب داد: من دختر استاد تو هستم. اومدم که بهت بگم نگران تو هم. بو علی با تحجب پرسید. نگران من؟ دختر جوان گفت بله. من اومدم تا رازی رو برای تو فاش کنم. بو علی با کنجکاوی پرسید. چه رازی؟ دخترک جواب داد. رازی که میخوام بگم اینی که اگه میخوای یه روزی از اینجا سالم و تندرست بیرون بری؟ باید هرچی پدرم به تو یاد میده یاد بگیری ولی نظری اون بفهمی که تو یاد گرفتی خودت رو گاهی به سادگی بزن به و بهش بگو این چیزایی که میخوای به من یاد بدی خیلی سخت و دشواره من نمیتونم یاد بگیرم دختر جوان سکوت کرد و دوباره ادامه داد اگه پدرم بدونه که تو هرچی اون میدونه یاد گرفتی اون وقت, اون وقت دیگه ادامه نداد و دختر سکوت کرد. بو علی با نگرانی از دختر جوان پرسید: اون وقت چی؟ چه برای سر من میاد؟ دختر جوان جواب داد: هیچی. اون وقت تو رو میبره توی زیر زمین، توی یکی از این اتاقا و میندازه توی خمره. اونجا توی اون زیر زمین هزار تا خمره است که توی هر کدوم از اونا یه جوونی از بین رفته. پسر با نگرانی نگاهی به اطراف انداخت و گفت، اخ، اینجا بوی مرگ میده، من باید هرچه زودتر از اینجا برم، بوالی پرسید، تا حالا ازش نپرسی دیگه میخواد با این همه خمره چیکار کنه؟ دختر جوان گفت، چرا؟ یه روزی ازش پرسیدم اون گفت میخواد مغز و روان و دل این جوونا رو نیرومند کنه بعد جون اونا رو بگیره و به جون خودش پیوند بزنه تا همیشه زنده بمونه بولی با خش گفت چه آدم می؟ دختر جوان گفت آروم باش آروم باش من نمیذارم پدرم تو رو مثل جوونای دیگه بندازه توی خمره بعد دوباره تأکید کنن به بو علی گفت یادت نره چی گفتم تمام چیزها رو یاد بگیر ولی نگو که یاد گرفتی بو علی تصدیق کنن گفت باشه باشه باشه یادم نمیره و بعد از دختر جوان بابت کمک و محبتی که در حقش کرده بود تشکر کرد دختر جوان لبخندی زد و از اتاق بو علی چند روزی گذشت این بار هم مرد به بیابون رفت دختر جوان از این فرصت استفاده کرد و دفترای پدرش رو برای بوالی برد و به اون گفت که تمام دانش پدرش تو این دفتراست بو علی هم تند و تند همه رو خوند و اونا رو از بر کرد و از مرد که استادش بود استادتر و داناتر شد بوالی دیگه تمام فکر و ذکر شده بود رهایی از اون خونه. این بود که خودش رو به سادگی و نفهمی زد تا جایی که مرد از کودنی اون به ستو اومد و بالاخره یه روز به بوالی گفت من اون روزی که تو رو با پدرت دیدم فکر میکردم جوان جوون باهوش و با درایتی هستی ولی الان متوجه اشتباهم شدم. و بعد با عصبانیت ادامه داد تو جوون کودن و احمدی هستی و به درد کار من نمیخوری و بعد با خش در حالی که زیر لب ند می کرد دست بو علی رو گرفت و از خونه بیرونش کرد و بعد هم بر سرش فریاد زد که تو هیچ وقت چیزی یاد نمیگیری پسر یه کودن و خنگ بو علی هم با شتاب؟ راه بیابون رو پیش گرفت و به طرف شهرش برافتند و اما بشنوید از عبدالله بلخی پدر بو علی طرف دیگه داستان پدر بو علی که مدت زیادی پسرش رو ندیده بود سخت احساس دلتنگی میکرد و اون روز توی حیات خونه نشسته بود و داشت به خودش میگفت که بوالی کجایی پسرم؟ دلم برات خیلی تنگ شده نمیدونم بالاخره چیزی یاد گرفتی، نگرفتی، نمیدونم کاش سودتر هنوز حرفش تموم نشده بود که یهو بو علی پیدا شد پدر با خوشحالی بلند شد و پسرش رو در آغوش کشید بو علی هم که از دیدن پدرش خوشحال شده بود توی چشمای خیص پدرش خیله شد و گفت پدر جان, من اومدم تا به شما کمک کنم و اونچه یاد گرفتم برای آسایش و تندرستی مردم شهر به کار ببرم پدر با ناباوری پرسید واقعا تو اومدی به من و مردم شهرت کمک کنی؟ بو علی با حیجان گفت البته البته بعد دست پدرش رو بوسید و ادامه داد پدرشان من چیزای زیادی یاد گرفتم که بسیار ارزشمنده. و بعد باز هم دست پدر رو بوسید و هر دو تاشون خندیدند و همدیگر رو در آغوش کشیده یکی دو روز گذشت یه روز بو علی به پدرش گفت پدرجان شنیدم که قاضی القذات این شهر به آهو علاقه خاصی داره پدرش گفت خب منظور بو علی گفت من به شکل آهو در میام و تو منو ببر سر راه این قاضی القذات و به سیصد اشرفی بفروش ولی بدون افسار افسار رو نده وگرنه کارمون زار میشه پدرش پرسید خب وقتی فروختم چیکار کنم؟ بو علی جواب داد: اون وقت بگو این آهو فقط خوراکش قند و نباته. پدر بو علی هم چیزی نگفت و همین کار رو کرد. آهو رو آورد سر راه قاضی گذاشت. قاضی تا چشمش به آهو افتاد با خوشحالی جلو اومد و از پدر بو علی پرسید: این آهو رو چند می‌فروشی؟ پدر بوعلی علی بلافاصله گفت سیصد اشرفی و بگم که خوراکش هم قند و نبات. قاضی گزاد سیصد اشرفی داد و آهو رو خرید. پدر بوعلی افسار آهو رو در آورد و گفت بی افسار می فروشم. قاضی گفت آهورو بی افسار نمی فروشن. پدر بوعلی گفت ولی رسم ما اینه که آهو رو بدون افسار بفروشیم. خلاص قاضی و آهو رو بدون افسار به خونش برد و به نوکرش گفت که این آهو رو به طویله ببر و به جای یونجه و سبزی بهش قند و نبات بده. نوکر اطاعت کرد و آهو رو به طویله برد و با خودش گفت کی آخه کی به آهو قند و نبات دادی که ما بدیم؟ بعد شونش و بالا این و گفت ولی حکم دستور قاضیه نمیشه اطاعت نکرد. بعد چوبی پیدا کرد و به آهو گفت بهتر اول دست تا چوب بخوری بعد قندونه نباد. و افتاد به جون آهو حالا نزن و کیب بزن. آهوی بیچاره که از زربات پیابه چوب بدنش درد گرفته بود خیزی کرد و به هوا پرید و بعد محکم به کمر نوکر زد نوکر از درد به خودش پیچید و به گوشه پرد شد وقتی بلند شد دید ای داد و بیداد که آهو نیست که نیست از ترسش به نزد غازی رو رفت و تمام ماجرا را تعریف کرد غازی گفت مرده که دروگو چجوری ممکنه آهو یه دفعه ناپدید بشه روسیه بگو نوکر مجبور شد دوباره تمام ماجرا رو برای قاضی تعریف کنه قاضی هم که از دست نوکرش حسابی عصبانی شده بود دستور داد تا نوکر رو به جای آهو توی طویله بندزن چند روز بعد بو علی به پدرش گفت فردا من اسب زیبایی میشم و تو منو به کلانتر شهر که علاقه خاصی به اسب داره بفروش ولی یادت باشه که این بار هم منو بدون افسار بفروشی پدرش هم عصب رو نزدیک خونه کلانتر شهر برد نوکر کلانتر تا اسب زیبا رو دید برای خوشنودی کلانتر جلو رفت و پرسید این عصب رو چند میفروشی؟ و پدر بو علی جواب داد پانصد اشرفی البته بدون افسار در این لحظه مردی از راه رسید و توی چشمای پدر بو علی و اصف گیره شد و گفت من اصف رو به ششصد اشرفی می خورم. اون هم با افسار پدر بو علی حاج و واج بین دو خریداری ایستاده بود که یهو ها که همون بو علی باشه از چشمای مرد خریدار فهمید که اون همون استادیه که اون به کمک دختر جوون از چنگش رها شده بود اون وقت هرچی توی چشمای پدرش زل زد و سمکوبی تا بلکه پدرش متوجه ماجرا بشه نشد که نشد و پدر که هرس و طمع 600 اشرفی حواسش رو پرد کرده بود به راحتی از رو به مرد استاد فروخت مرد هم اصف یا همون بوالی رو به خونش برد و بهش گفت دیدی دی به چنگم فکر کردی خودت رو به سادگی و کودنی بزنی و دخترم رو فرید بدی دیگه پیدات نمیکنم؟ بعد هم فریاد زد آی دختر خیانتکار زود باش اون کارد فولادی رو بیار دختر که دلش به حال اسب که همون بو علی باشه سوخته بود فکری به ذهنش خطور کرد و یهو یه فریاد زد آی پام آی پام پا! شکست مرد که صدای فریاد دخترش رو شنید به طرف اون دایید تا از زمین بلندش کنه در این میون اسب افسار رو از گردنش باز کرد و شد کبوتر تیز پروازی و اوج گرفت و رفت مرد که متوجه حقی دختر شده بود با عصبانیت ضربه بون زد و خود شاهینی شد و کبوتر رو دنبال کرد کبوتر که دید نزدیک اسیر چنگال شاهین بشه نزدیک کاخ پادشاه پایین اومد و الماسی شد و به تاج پادشاه چسبید شاهین هم به شکل مردی در اومد و جلوی تخت پادشاه ایستاد و تعظیم کرد و گفت من اون الماسی رو که به تاج چسبیده میخوام پادشاه گفت الماس من به چه درد تو میکره؟ به مقداری پول میدم مرد گفت اگر پادشاه بخشش میکنه اون چه من میخوام به این بده پادشاه گفت بگیر این الماس مال تو ولی تا اومد الماس رو از تاجش در بیاره الماس افتاد و شد چند دونه انار مرد هم آب شد و رفت تو زمین چند دونه انار هم به یه جوون زیبا و بلند بالا تبدیل شد پادشاه که از دیدن این صحنه به شگفت اومده بود از جوون پرسید تو چی هستی و اینجا چه میکنی جوون هم که همون بو علی بود تمام ماجرا رو مو به مو برای پادشاه تعریف کرد پادشاه از بودن چنین دانایی در شهر بسیار خورسند شد و گفت ای خاج علی اگه برای پسرم یه همسر دانا و زیبا پیدا کنی، دخترم رو به عقد تو در میارم. بعد پرسید، آیا تو دختری زیبا و دانشمند سراغ داری؟ بو علی به تندی جواب داد، البته، البته که سراغ دارم. بعد رفت و دختر مرد استاد رو آوهو. پادشاه فرماندا تا شهر و آزین هستند، دخترش رو به عقد بو علی در آورد و دختر مرد بدجنس یا همون استاد رو که روزی استاد بو علی بود به عقد پسرش، و از اون روز به بعد چون بو علی در هر دانش و هنری استاد بود، بهش گفتن خواج بو علی، یا افثانی بوالی که راز دانش رو از دست مرد دیف صفت بیرون آورد و به دست خودش گرفت و به دیگران داد همونطوری که اونها توی این افسانه به آرزوی خودشون رسیدن آرزو کنم شما هم به آرزوتون برسید این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت حسابپور اجرا مهران دوستی صداپردار داریوش گودرزی و, و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه‌های دیگر بدرود